بسم الله الرحمن الرحيم فنور حبنا قوة الا بالله الذي لا يلازم الله على سيدنا محمد الله اكبر الله اكبر الرحمن ما نذ بين تجلينا الطاهرين الهداه المهديين العالم المنتجبين سیما بقیت الله في السماوات و لا بالله من الشيطان الرجيم انا وزعت به العرب و بجوامع قرون مزار وقد علمت موزع من رسول الله صلی الله عليه و آلیه بالقرابت من منزله خسیصه توفیقی است الله، محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار و در این فرصت مهیا شده به ایام متعلق به سیدت نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیه در محضر سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا و مختدان امیر المؤمنین از زبحره میبریم و در خطبه 192 و و نورانی کلام امام به تعمل برخواسته ایم و استفاده ها میکنیم. امیرالمومنین همان گونه که ملاحظه فرمودید نکات عجیبی رو در یکی دو بخش پایانی که خاندیم مطرح فرمود و پشتارهای خیلی مهمی رو به مسلمانان داد با طرح یک ساختار و مدل اجتماعی از آنچه خداوند با بندگان خویش عمل می کند. و به اون ورودی فرمود به شرایط نامبارک سالهای پایانی عمر خویش و ایام خلافت اشارتی فرمود به قمه های درونی که سینه اون رو افکار کرده است ناپسندانه سه گروهی که در مقابل او بودند ناکسین و قاستین و مارقین و به سیاست عملی خیش و رفتار خود با این جماعت متذکر شد و در نهایتم حتی مطرح کرد که در آنچه چه عمل کردم با نهایت قاطعیت اگر فرصتی دوباره دستد می دانم با اهل بحقی بگونه ای عمل کنم که کسی از ایشان باقی نماند و اون معاویه و یاران او و شامیان بود به پایان رسید گویا در این قسمت از خطبه نورانی بنا دارد كه امیرالمؤمنین بعد از این برخوردها و مواضعی که نسبت به این سه گروه داشته است و این به عمیقی که وجود مبارکشون بازگو فرمود به تعبیر ما گویا امام می‌خواهد. ری شایجو چه بازگو فرموده است از معرفت و علم و این های جوشان حکمت و مستند آنچه بدان عمل کرده است در مواجهه با این سه گروه و دیگران رو بازگو کند و مطرح کند که حجتی بر آن همگان در اون عصر زمان و در طول تاریخ باشد استهزار دارید موضوع این خطبه شیطان توبیخ شیطان تبیین رفتارهای شیطانی به حالات شیطان گرایان و شیطان پر بود و شیطان زدگان لذت حطانت و تعریف و گفتن از خیش و نمی پسندند. اون هم در این شرایط و در این خطبه دقیقا اگر توجه کنیم نقطه مقابل است که امام بر این رو مطرح کند یعنی امیر المومنین من در زمان سقر چه کردم در محضر پیامبر مکرم اسلام چگونه گذراندم به یه خاطرات مبارکی و یه افتخاراتی از زندگی خودش اشاره میکند نه آن است که امیر در موضع گزارشی از منقبت و فضائل نفسانی خیش باشد عکس اینه دقیقا امیر المومنی دارد میخواد بفهمد که این همه آوازه ها از شاه با بعد گرچه از هلقوم عبدالله با بعد امام دارن این نکتر رو بازگو میکنن که من اون دارم از تربیت نورانی نبی مکرم دارم و منتصب به تربیت است نه از شخص خود من و در این حال یه خوشدار و است برای اون گروه های مقابل و یک امید و نویدیست برای کسانی که میخواهند با اتمینان تمام در مکتب نورانی یا علوی زانو بزند حقایق و معارفی رو از محضر مبارک او دقیقا منتسب و یکسان با مکتب پیانبر بیاموزند پس این توهمی که گفت ممکنه بعض از شراح نحجر بلاغی تذکری با دادند به نظر می آید که خیلی راحت و روان تر است از اینکه گاه بعض از بزرگان اشارتی کردند. اما چه فرمود فرمود انا و زع به کلان کلل عرب شاید در بعض از نصه ها سقر رو هم داشته باشه. اگر باشد کلمه این سهقر نقطه مقابل کبر تمام اون رو بخش بر دو کنید کبر کی میشه کمتر از اون میشه سقر اگر تمام مهم رو بخش بردوبه کنیم و مقابل هم قرار بدیم دیگه نوجوانی را جوانی را تمامین ایام را در بر میگیرد. من وضع کردم به کلاکل لعرب کلاکل کل کل به معنای این قفصه صدری و سینه استحانهای سینه من کلاکل عرب رو وزن یعنی به زیر کشیدن در قبال رفع بالا بردن و رفعت من به زیر کشیدم سین تبرانه عرب را من پهلوانان عرب رو در جوانی به خاک نشاندم با تمام قدرت ولیدها، ها شیبه ها کسانی بودند که در جوانی از دم تیغ ما گذر نکردند و نتوانستند مقابل من هوا مرد من در میدان ها و نبرد ها باشند و کسر تو نواجم قرون ربیعت و مذر و من شاخ بزرگان قبیله ربیع و مزر را شکستم کسر نواجم جمع ناجمه از ماده نجم به معنای طلوع برون آمدن به همین خاطر عرض به خدمتون به هرچه برون می‌آید، به در می‌آید. نجم گفته میشه و نجم هوا به گیاهانی که از زمین می نجم میگویند. النجم و نجم و, شجر و به شاخی که از سر حیوانات برون میآید آید و خودشانشان می نجم میگویند به ستارگانی که در دل شب یک دیده می شوند نجم میگویند به دندان که از لسه یک در کودکی برون میآید آید نجم می گوین. این بروز ظهور یک باره من این نجمه قبیله ربیع و رو این چهره‌های برجسته ای اینها که طلوع کرده بودند و ظهور کرده بودند به شخصیت شخصیت‌هایی در این قبائل و با اسلام مواجه شدند در پیش روی اینها ایستادم و اینها را کسر کردم و بشکستم و قدرت اینها رو بسنگ آوردم امام به شمی از ها و خدماتی که در محضر نبی مکرم اسلام انجام دادند در ایام جوانی و جوانی اشاره می‌فرمایند اما ربی اول مزرد و قبیله از مهمترین و بزرگترین قبائلی که فرزندان معادب ندنان و نام آشنایی برای جامعه عرب بودند. خب یه جمله کوتاه اشاره فرمود امام به خدماتش و در این حال به شجاعتی که در شجاعت شیر ربانی نیستی. در مروبت خود تدامی کی خب بنده که بنابرای خیلی از مسائل توفیقی نبوده است که مشرفشم و پای در حریم نورانی امیر المؤمنین تا کنون بگذارم اما عزیزانی که مشرف شدید اگر دقت کرده باشید در بخش بسیاری از کتیبه های حرم نورانی امیر هفت قصیده وجود دارد که اینها علویات سبه است مسائد هفتگانه علوی است گیرامون مقام شامخ امیر المؤمنین که گوینده این قصائد و سراینده این قصائد همین شاره نحج البلاقه ابن عبل حدید معتزدی عالم سنیست که اشعارش کتیبه ی اطراف حرم امیر است یکی از اون قصائد قصیده ی اینیه که میرسد به اونجا يا قال الباب الذي انحزوه عجزت اكف 40 و اف لو چهار نفر بعد از تکان بدهند در را يا الباب الذي انحزوه عجزت حدوثه كنت انك جئوا الى فل... لولا حدوس که گفت و اینکه جو ارلا عربان و بل لولا ممانت قلت گفت باسط اینکه باست في تقدره فل اتاوت الله هج چی میگه این شاره میگوید علی اگر نبود که تو روزی به دنیا آمدی و روزی از دنیا میرفتی میگفتم تو جان در تنها قرار دادی و تو روزی در میان مردمان توضیح کردی لیفی که معتقد عاکش و اعتقادی در مورد تو دارم میگن باکی هم ندارم بپسندد کسی و نپسندند و اللهله ولههی درون ما و کاونت دنیا ولا جمع بریدیت اجمع خدا اگر حیدر نمی بود خانف نمی بود وجود نمی بود حالا این گران نیاید بر دوستان عزیز این لیفی که معتقدان سعکشف و صدوه ها اشاره به همون وجود بالاخره لولاک نما خلقت و لفلاک هست اون لتقایی انسان کامل خلیفت الله اگر نباشد خنق وجودی نمیماند اصلا فلسفه وجود خلیفت الله هست که اینی فل فلعرض خلیفه عرض بدون خلیفه انسان بدون خلیفه نمیشه در ساختار آفریمش و خلقت خیلی زیبا میسراییت این شاعر سنی معتظلیم مرادم همون همون بینتی بود که به شجاعت قدرت قدر المؤمنین اشارت بسیار لطیفی دارد امام این موضوع رو مطرح فرمود بدن بال اون حالا به سرمنشه تمام افتخاراتش و تمام فضائلش حضرت اشارت می کند وقت علمتم وقت علمتم موزعی من رسول الله شما میدانید دانید و جایگاه من رو نسبت به پیامبر. خود کلمه یه علم توم زیباست یعنی یه چیزی نیست که من شما بخواید تعریف کنید، تعامل کنید، آشنا بشید که رابطه ای من با پیامبر چه بوده است. این یه چیزی است که مانند قریشیده در آسمان برای جامعه عرب روشن و واضح هست که من چه موقعیتی نسبت به پیامبر داشتم. حالا یک کمی شرحش می کند این رو. بالقرابه القریبه شما میدونید که من چه نزدیکی، یه بسیار نزدیکی پیامبر داشتم و المنزلت الحسیسه و آگاهی به جایگاه ویژه و خاص من در نزد رسول خدا و منزلت الحسیسه بگونه این که وزنی فی هجره این این جملاتی که امام از زبان خود امیر و حلاوت دیگه داره و زان فی هجره پیامبر منو تو دامن خودش قرار میداد و می نشاند و انا ولیدن یضمنی الها صدره من کودک بودم من خردسال بودم منو در دامانش قرار میداد و پیامبر من رو به سینه پیچ به وجود خودش متصل میکرد چیر دارد می‌فرمادم ایرنگم است هزار دارید تمام عمرخان تبری و غیر تبری همه نوشتند اون سالی که عام المجاعه و سال قحطی و یه شدیدی در مکه پیش آمد ابو طالب شیخ است بزرگی است بزرگ مکه است اما و این ابن عبد در مقدمه شهر نجامی نیست و قل من یثبت به کم پیش میادی انسان فقیر سید و بزرگ یک قبیله و جماعت و شهری باشد ابوطالب فقیر بود اما سیدال اورایش بود و بزرگ مکه بود تو اون سال قهفی فشار بر خاندان ابوطالب بسیار آمد کار اونجا کشید کثرت عائله فراوانی فرزندان پیامبر پیشنهاد دادن به عباس عموشون گفتن بیایید بریم پیش ابوطالب و کمکش کنیم اومدن گفتن آقا ابوطالب شما بیا کفالت بعض از فرزندانت رو به ما بده عائلت رو سبکتر کن ابوطالب گفت عقیل فرزند گوچه که من از باشد در خانه پیش خود من اما شما مخیری از فرزندان من این محبت رو در حق من بکنید پیامبر وجود و مبارک امیر را رو انتخاب کردن عباس اموی پیامبر جعفر را برگزید. همان که جعفر تیار میگویید بعد در تاریخ اسلام. خب امیر المومنی خورد سال است؟ این سلیل کن میدارد دیب. سه چهار پند سال هست به تحبیری. کفیل اون رسول خدا شد. اومد کجا؟ اومد تو خونه پیامبر. شد فرزند پیامبر به تعبیر ما. دیگه شد تربیت اون اداره یا اون امورات اون با پیامبر. این زیباست. عوامل شک گرفتن شخصیت رو چه میگیم؟ میگیم سه تا میگیم یک فراست. دوم محیط و تربیت. سوم های شخصی و خود. پدر رو ابوطالب، با تمام عظمت و بزرگی که این مرد در تاریخ عرب دارد و در تاریخ اسلام دارد. با تمام جلالت شخصیت و بزرگی که سال فوت او را که مقارن با فعال فوت خدیجه است نبی مکردم اون سال رو چه نامید؟ حوزن سال غم و اندوه. که فرمود من شکست یه رکنم عبو طالب, یه و تا که عبو زنده بود پیش نمیمد اون سهنه هایی که بخوان تصمیم بگرن پیامبر رو تکه تکه کنن و ترور کنن و به شهادت برسانن بند از فوت عبو طالب, جرعت پیدا کردن و جسارت پیدا کردن بعض از مشرکان که چه این را رو با پیامبر انجام بدن مادر فاطمه بن دهزد قانونی که پیامبر میدانید با او چه کرد پای برهنه در تشریع جنازه او ابای خودشون رو بخشی از سرتاسری کفن فاطمه قرار دادن درون قبر رفتن قبر آماده کردند. گریز پیانبر در پیشگاه خدا خدا یا این فاطمه هست فاطمه بنت اصد حکم مادری من رو دارد از اون طرف ابوطالب کفیل رسول خدا بوده دیگه از هشت سالگی پیانبر مونده تو خونه ابوطالب و تو دامن فاطمه بنت اصد خب دراست اینه جنتیک اینه اون ابوطالب اون فاطمه بنت اصد پدر و مادر علی حالا برای ترمیت اومده کجا؟ آمده تو دامان پیانبر و حدیجه خود و داشته های خودش هم که مشخص دیگه در طول زندگی میبینیم و نشان داده میشود دیگه باید دیگه در انتظار بود که قلعه و طلوعی رو ببینیم در اون عوج برجستگی در تمام امکاناتی که یک انسان می‌تواند طلوع کند به شکوفا بشه و خودش رو نشان بده فرمود من در خانه پیامبر و انا ولیدون یزمونی صدره پیانبر منو به سینه میچست این ارتباط عاطفی و احساسی و تمام محبتی بین من و پیامبر بود. و یک نفونی فی فراشه، پیانبر منو نزدیک خودشون و قریب خودشون در بستر خودشون قرار میدادن، کنار بستر خودشون رو منجا میدادن، یا خدیجتو اج علی اند فراشی. خدیج بستر علی رو کنار بستر خود من قرار بده یعنی میخواهد از همون سال و روزها همراهی علی را با خودش پیامبر کاملا تثبیت کند و هموار کند ولا يمسني جسده پیامبر منو به بدن خودشون میچسبودن مس کردن جسد من بدن من رو و من بدن رسول خدا رو یعنی تمام انواع ارتباطات محبتی و عاطفی همه جور رو شور و شعور رو رسول خدا با من برقرار میکرد یشمونی عرفه از بوی خودش به من میرساند من حس میکردم اینقدر نزدیک نزدیکو در محضر رسول خدا و کان یم ز وشه سموم مییول یه چیزی رو که من میخواستم بخورم برام مشکل بود درشت بود اندازه نبود سخت بود پیامبر این رو مزقش میکرد کرد میکرد آمادهش میکرد آمادش خردش میکرد به دهان من میداد من میخوردم. پیامبر باها حال لغمه به دهان من میگذاشت و از دست مبار او من میخوردم و استفاده میکردم و تا اینجا و ما وجدني كثرتا في قوله منم در محضر پیامبر از همان ابتدا تمام استعدادمونو دادم پیامبر نیافت از من هیچ خطا و دروغی رو و خلافی رو در گفتار و لا فی لتن في فعل خطا خطا و اشتباه نه خلاف گفتاری پیامبر از من دید نه خلاف رفتاری من هم به تمام معنا تربیت پذیری خودم رو در محضر مبارک این مربی بزرگ نشان دادم. عدب نیرسول الله و اکسن تهدیبی پیامبر ادب کرد منو و خوب ادب کرد. منم ادب پذیر شدم از نظر نبی مکرم. قبل از این که من ادامه رو بگم خیلی زیباست. فضلوب نه عباس امونی پیانبر چهار پسر دارد. عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عباس فضل ابن عباس قسم ابن عباس این چهار تا معروف اینه وقتی میگن در حدیث و تاریخ و تفسیر و غیره وقتی میگن ابن عباس و قال ابن عباس اون عالمشون مراد میشه اون قسم ملاته رو به اتفاقا این افتخار رو داشت که شاگرد مکتب تفسیری امیر بود اون عبدالله عباسه اون عبد الله عباس که گفت جلو ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب اون چه دارم در تفسیر قران است علی دارم اهل سنت جایگاه عجیبی برای ابن عباس بایلن. اون رو میگن حب الله امه ربانیه حافظ ال میگن عالم ربانی امت اسلام یه جایگاه خاصی برایش قائلا برادر اوف از ابن عباس گفت که سنت و ابی ولد رسول الله سؤال کردم از پدرم عباس عموی پیامبر از رسول خدا که از فرزندان پیامبر ایهم کان رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم, صلی اللهم. پیامبر به کدوم فرزندشون بیشتر محبت داشتن؟ خوب دقت کنید ببینید چگونه تسبیت شده این نکته اون روز در زمان حیات پیامبر صدر اسلام فقال علیه ابن حبی طالب. پدرم جواب داد علی ابن حبی طالب. من تعجبم زد گفتم آقا مثل این که اجتماع فهمیدید سال ما را من سال کردم کدام یک از فرزندان رسول خدا فقال تو لهو سعل تو ما گفتیم فقاله ان كان ح الله من بنيه جميعا برف علی از تمام فرزندان محبوب تر در نزد خدا از همگان محبوب محبوبتر در نزد خدا. ما رنا ز يله يومد من ده منذ كان طفلا پیامبر نگذاش علی از او فاصله بگیرد یه روز از اون زمانی که طف بود و آن با آن دست محبتش رو بر سر او داشت الا انگکونه فی سفرین لخدیجه مگر یه سفرهایی رو عرض به خدمتون گاهی پیانبر داشت در اون زمان خوردی علی که نمیشد و ما رعینا ابن عبر ببنن منحل علی و ما ندیدیم میزان محبت و لطف پدری رو به فرزندش آن مقدار که از پیامبر. با علی دیدی، اون طرفش حالا و ما ابلا ابن بد او لابن من علیله و ما فرزندی رو ندیم ندیدیم متیتر برا پدرش از علی نسلت به رسول خدا این ارتباط امین دو و تنگاتر این است از اینسان که اونت حال و ابنا انا و ابنا اکن و نسان انا و نسان اکن و انفصنا و انفسنا اینه که وقتی سآل می کند معمون حباسی از وجود نازنین علی ابن موسا ولی متهم ما که مددلیل علا خلافت جدک میشه یه دلیل قرآنی بر خلافت جدتون علیه ابن حبی طالب بگویید نوشتن بسم ای تعالی انفوس انا انفوس انا کافیست خدا میگوید گوید قل در مواجهه پیانبر با مسیحیان نجران شما بیارید فرزندانتون شما زنانتون بیارید شما چسانی که چون نفس شما هستن نفس شما هستن به منظره جان شما هستن بیارید مقابل هم می ما هم میاریم به حق اینها نفری میکنیم به پیشگاه خدا که هر که به حق نیست از میان برود سوره مبارکه آله آیه مباهله انفسنا نفس الله زمخشری تفسیر کشاف جند دوم زیل آیه مباهله آیه شهست ماجرا رو نهارو نکنند که بارها حرز کردم گفت آفتاب صبح بیست و بر مدینه طلوع کرد مردم مدینه منتظرند مشاهده کردن در بخانه پیامبر باز شد رسول خدا برون آمد اما دیدن دست راست پیامبر در دست حسن ابن علی المشتبه در آقوش پیانبر علی حسین سید و شهده. پشت سر پیانبر رو نگاه کردن دیدن سیدت و نسان العالمین صدیقه تاهره پشت سر همشون رو نگاه کردن دیدن بجود نازنین عصد الله قالب علی یبن حبی طالب پشت سر اینها داره میاد سلام. محمد مجم. دیگه نیاز به تفسیر نداشت آیه این شریف پیامبر عملا تفسیر کردن که ابنا انا چه کسانی هستند نسا انا کیست و انفوس انا کیست امام نوشتن به معمون انفسنا وقتی کسی به منزل جان و نفس خود رسول خداست آیا میشه غیری رو بر او مقدم داشت؟ یعنی مقدم داشتن بر پیامبر اگر کسی رو بر او مقدم بداری چون این نفس پیامبر دیگه از انفسنا به نسل سریع کلام اله این است که مشاهده می و سیریست که امیر المؤمنین به یه گوشه هایی از اون اشاره می‌کنند. کنن به دنبال اون بر گردن به این. خب من که این ارتباطو با اما خود پیامبر می دانید چما مسلمون ها آگاهید حالا به در زبان من علی شاهد صحنه یه گوشه ای در حال هوای رسول خدا بگم بلقد غرن الله بلقد غرن الله بهی قطعا لام, لام بر سر فعل ماضی همه تأکید و تأکید اتمند و محققا و به یقین خداون قرنن لا و لازم کرد قرین کرد با پیامبر که درود و خدا بر او باد من لدون خوب گوش کنید عزیزان این سندیه یک محققا دارم براتون نکونم که این سند خیلی پامات ذهنی رو رفت میکنه. کنه من لدون انکان فتیما از آن زمان که پیامبر فتیم بودن کلمه فتیم از ماده فتم و فتام فتام زمان, شیر زمان از شیر گرفتن کودکان رو میگویم گفت از فتام خون قضایش شیر شد از فتام شیر گیر شد از فتام لغمه لغمانی شدید طالب معشوق پنهانی شدید اون دوران گرفتن از شیر رو میگن فتام درست؟ من لدون انکان فتیمن از زمانی که پیامبر از شیر گرفته شد زمان از شیر گرفتگی چند سالگی است الوالداتو تو اولادهن نه اولین کامله لمن ارادن یوتیم من رضاه دو سالگی تمام 24 ماه تمام از بعد از دو سالگی خداوند همراه کرد با پیامبر گوش کنید از ایزان مل... اعظم ملکن من ملائکته اعظم ملائکه خودش رو اعظم ملائکه خودش رو خداوند قریم کرد با پیامبه یسلکو بهی طریق المکارم که سلوک دهد و نشان دهد راه را به پیامبر راه مکارم اخلاق را و نیکوترین رفتارها را یعنی از دو سالگی به بعد وجود نازنین نبی مکرم اسلام به تأمیر امیر المؤمنین و شاگرد اول مکتبو تحت تعلیم حضرت پروردگار به توسط فرشته خاص و ویژه الهی قرار گرفت شروع شد اعظم من من مناه بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق بالعالم. من کوچترین اخلاق موجود رو آموزش میدم به پیامبر لیله و نهاره این آموزش هم شب و روز با سه شیفت بود روز و شب استمرار داشت و قطع نمیشوند یکی از موضوعاتی که در مورد نبی مکرم مطرح میشه اینه که خب پیامبر چهل سالگی مبعوث شدن به رسالت و فرمودند اقرا بسم ربک الذی خلق پیامبر قبل از چهل سالگی به چی عمل میکردند گاه این رو بس از جد کلامی مطرح میکنن متکلمان آگه پیامبر تابع چه این و دینی بودن قبل از از وجود ایشان که هیچ خلاف توحیدی دیده نشده و هیچ هم نتونه یعنی تمام دشمنان اسلام که تو این سالما تو این سال اخیر کمرشون رو بستن مستشرحینی که اومدن تو صحنه که بتونن با عنوان بهانه تحقیق و پژوهش و پیامبرشناسی و اسلامشناسی و اینها وارد این مقوله بشن بلاشرها گلسیهرها امثال اینها انریماسه ها تمام اینها که اومدن این کار رو شروع کردن نتونستن یه جان زندگی پیامبر پیدا کنن بگن ها ببینید این اون توحیدی که باید باشه یا چنین رفتاری که باشه نبوده تو زندگیش تمام تلاششون کردن نتونستن چینی چیزی رو پیدا کنن سراسر این سان روشن و موجه هیچ نقطه تاریک و ابهامی از این جهات درو دیده نمی اما خب سؤال پس به چی عمل می کردن گروهی می گویند پیامبر تابع آین حنیف بودند. گروهی در مکه بودند به نام خنفا مانند عبد المطلب فرزندان عبد المطلب خنفا اینها هم؟ این آین چرا؟ ما کانه ابراهیم و یهودی و لا نصرانی و بلا حنیف مسلمم اینا تابع این ابراهیم بودن گروه این رو میگم. مرحوم مجلسی علامه مجلسی در باهار این بحث مفصل مطرح خیلی عمیق اقوان مختلف رو مطرح می یه وقتی من اینا رو تطبیق می دادم فهماشاتیشان رو شش دلیل اقامه میکنه؟ در این که پیامبر به هیچ دینی قبل از نبوت خودشون به هیچ دین دیگری عمل نمی جز با آنچه چه خداوند به دیشان داده است یکی از عدلش همین همین فرموش امیر المومنینه و ایشان می گوید پیامبر مکررم اسلام در چند سالگی به رسالت رسیدند اما قبل از آن به نبوت رسیدند پیامبر احراز مقام نبوت کردند آموزش ها و القاعت برایشان ایشان بود از سوی خداوند اما اینی که بیاد به شکل رسمی یا ایه المدفر قم فانغر اینی که به شکل رسمی بیاد و رسالت اعلام بشه این بعد از چه انسانگی بود این مال اون تاریخ و لما بلغ شد و وستما آتینا و و علما این مال اون زمانی بود که چه انسانگی تیشد این فرمایش ایشانه؟ توجه دارید. امیر المؤمنین در اینجا نکتهی میگن که این فرمایش رو تا حدی تغریب میکنه و نزدیک میکند فرمود خداوند مند چی رو فرستاد آموزش میداد به اون لیله و نهارو حالا و من علی پس پیامبر از دو به بعد شد تحت تعلیم و آموزه های الهی برای اون که رسالتی در پیش دارد که میخواهد تا همیشه بشریت سخن بگوید که این فصل را با من بخوان با قیف است این فصل را بسیار خواندم آشغانه است این مردیه که با استعلا لعصود و ولعبیز بر تمام نجات ها تا قیام قیامت خدا بعد از ایشان برگ برنده رو نمیکنه دیگه آخرین برگ برنده خداست در آفرینش و در هدایت انسان ها که ارائه کرده است این پیامبر رو بلکن رسول الله فرمود ما کان محمدٌ <تصفيق> <بلو دلوقتي. تصفيق> <تصفيق> <عبا> احد من رجالكم بلکن رسول الله و خاتم النبیین شرحه سوره مبارکه احزاب دیگه پرونده نبوت و رسالت بسته شد پس بس دیگه کسی رو خدا باید بفرستد که تمام آنچه چه خدا در سیمای او دیده شود و نشان داده شود. اما من علی. و مقد کنتو اطبعه اتباع الفصیل اثر امه. و من علی هم. از همون روز اول که پیامبر این رخصت روی من دادن به خودش نزدیک نزدی کردن. من طبعیت می‌کردم از پیامبر. ببینید طبعیت، تابر. یعنی آن کسی که یه چیزی جلوست، این دقیقا پا شو اون نگزه پشت سر شرکت میکنه. تابع تبهیت اینه. لکت کنتو ات به اوه اتباع الفاسیل، فاسیل این حالتی که این بچه های این حیوان دارن که میچسبن بهش، ازش جدا نمیشن من همونطور که یه شطور بچه پی مادرش رو میگیرد از پیانبر جدا نشدم. تو تمام لحظه ها پی پیانبر حرکت کردم. یه فعوللی فی كل یوم من علمن و پیانبر رونی کرد. آشکار میکرد برای من هر روز یه بخشی از آموزش های خودش رو. از اخلاقش رو از ویژگی خودش رو یا بخش روشنی رو به من آموزش میداد پس پیامبر از دو سالگی شد تحت تعلیم پرمنگاه من علی هم از اون سال شدم تحت تعلیم پیامبر یرف اولی فی کل یوم من اخلاقی ها من و یعمرنی به اقتدام منو فرمان میداد امر می کرد به اقتدا و با پیروی از این اخلاق آدامی که به من آموزش میداد داد. خیلی لطیف و زیبان رو. حالا یک کوشه هایی رو بازگو می کنید. یه مال خود امیر المومنین بلغت کامه یجاوه رو فی کل سلطن بهرام بهرام. پیامبر قبل از اسلام هر ساله 30 تا 40 روز رو در امیر در هرام به سر می برد خیلی از شما توفیق داشتید دیگه رفتید جبل النور رو دیگه طی کردید از پایین تا بالا 160 متری دیگه طی کردید رفتید تا خود هرام این فاصله رو اون ناهمواری شو قاره هرام در جبل النور نور به در سرزمین مکه رسول خدا هر ساله دورانی رو در اونجا به سکوت و خلوت و تفکر و تنهایی به عبادت سر می‌گذراند. فمطلق قد کان یجاور فی كل سنه بهرا فراه بنا یراه غیری من می‌دیدم پیامبر رو می دانستم کجاست کسی دیگر رسول خدا رو نمیدید و نمیدانست این ایام پیامبر کجاست ولم يجمع بيتون واحد يومئذ في فِي غير رسول الله صلى الله عليه عَلَيْهِ وَآلِهِ و خديجه اللهم صل على محمد و و لم يجمع بيتون واحد يومئذ في الإسلام. غیر رسول الله جز رسول خدا و خدیجه و انسال سهما یعنی هیچ خانه‌ای در اسلام شکل نگرفت یعنی اولین خانهی بیت واحدی که در اسلام شکل گرفت شکل نگرفت مگر اینجور که یه فرد اون رسول خدا بود فرد دوم اون خدیجه بود و سبومین اون من بودم سبومین یعنی بنابراین امیر المومنین به سراحت و وضوح دارد میاد چی من صادقل؟ اسلام هم میریم که من آمند من الرجال و من آمنت من النسان اولین کسی که به تعبیر همیر از زنان ایمان می آورد خدیجه سلام الله علیه ها و اولین کسی که از مردان ایمان آورد من علی یک خونه تو زمین بود روی زمین بود که نماز مسلمانی میگذارد توحید مسلمانی داشت اون روز و من علی یک سوم اون خونه بود. من ثبوم اون سه کسی بودم که در اون خانه چنین عبادت می و اله سالس همه الله حکم اینجا خیلی سنگین عزیزان خوب دقت کنید شاید اینطور نشنیده باشید ندیده باشید جز اینجا مگر ارا یعنی در این خطبه ارا نور وحی و رسالت من علی میدیدم نور وحی و رسالت را و, و من استشمام میکردم بوی نبوت را وقتی جبریل نازل میشد من استشمام بوی وحی میکردم من میدیدم نورانیت رسالت را میدیدم حالا گوش کن خب ببینید ماهیت این سخن نور وحی دیدن بوی نبوت رو حس کردن یعنی چی؟ یعنی لوکش فلقه تا مزدت تا یقینا یعنی منعالی به برکت تعالیم پیامبر دیگه زمولک به بسوز که سوز تو کارها بکند نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند و تا به یار پریچه را شغانه بکش که یک کرشم تلافی صد بنا بکند زمولک تا ملکوتش هجاب بردارند هرون که خدمت جام جهان نما بکند یعنی پرده های قیب برای منحلی برداشته شد من می دیدم نور وحی را من بو می کردم استشمان می کردم. راو خوش نبوت و رسالت را ولقد سمئتو این عجیبه ولقد سمئتو رنت الشیطان، رن ان رنین همین به معنای ای که از زاری بر به تعبیر فارسی خودمون زار زدم من شنیدم زار زدن شیطان را نمیفهمیم ما زار زدن شیطان یعنی چی؟ ناله شیطان یعنی چی؟ اما رسول خدا میگوید چندین موضع و موقع بود که شیطان ناله زد یعنی دیگه شیطان آخرین کارت‌ها و خان نشست و ناله‌ش رو سر کرد دیگه دید از نتونس کاری بکنه دیگه یک زمانی که خدا توبه آدم را پذیرو و تلقا آدمو من رب به این کلمات و توبه علی شیطان زد زیر گری به تعبیر ما که آی چی شد ما گمان کردیم دیگه موفق شدیم اما اینطور زمانی که پیامبر به رسالت و نبوت مبعوث شد و شیطان گفت چه بزرگ مردی و قدری آمده است که یا ای الناس انی رسول الله علیکم جمیعا یه چنین مردی آمده است زمانی که سوره زمانی که سوره مبارکه همد نازل شود شیطان زد. این قزامت سوره همد رو می‌رسان که لقد آتیناک هم من و القرآن العظیم پیامبر ما به تو سبع مسانی دادیم و قرآن دادیم همه مفسران میگوین سبع مسانی یعنی چی یعنی سوره حمد من تو تفسیر مشکات جلد اول سوره حمد مقدم است مفسر اونجا 20 نام داره سوره مبارکه حمد 20 نام داره یکی از این نام ها سبع المسانی است یعنی هفت هایی که تکرار داره حالا یا این که هفتایش که دوبار یعنی تसनीی دو بار نازل شده بر پیامبر یا این که شما در هر نماز دو بار میخوانید چون لا صلاة الا بفاتحه الكتاب نماز بدون حمد ما نداریم و هر نماز هم حداقل چند رکعت دارد دو رکعت دارد مگر یه نماز خاص وتر رو بفرمایید و اگر اینجوری شد شما دوتا همد میخونید پس مسانیه یا اینکه نه حروفش تکرار دارد بسم الله الرحمن الرحیمش الرحمن الرحیم تکرار میشه یا چه نبدو باز ایا چه نسته این اهدن از سراط المستقیم باز سراط المزینه سراط تکرار میشه ایا که تکرار میشه میشه هفت آیه اینکه که تکرار دارم پیام بر ما به تو سبت مسانی دادیم و قرآن عظیم دادیم خب سوره همدن به تو قرآن عظیمه اما حمد اونقدر از امت داره که خدا حمد را جدا مطرح می کنه جدا مطرح این که دیگه اوج همه حقایق در نظر بزرگان در احلابه سوره حمده ما قطعه از سهممون کنه از این سوره حالا برای قطعه در تفسیر این سوره نوشته شده از مطالبی و مسائلی یکی از اون جهاز وقتی بود که بر پیامبر وحی نازل می شود. هر وحی که میومد شیطان می نرزی. چون می دونید اعتبارش کی میشه شه کاسته می شدید و لقد سمه تو رنه شیطان من ناله شیطان رو شنیدم هین نزل الوحی انگامی که وحی نازل شد بر پیامبر. فقل تو یا رسول الله گفتم ای پیغمبر خدا یا رسول الله ما حاضر رنه این رنه چی بود فقال حاوز شیطان این شیطان است علی جان قد آی سمن عبادته دیگه معیوس میشه با این وه از اطاعت و عبادتش و شدنش چون گفت لاویا نه اجمعین الا عباد و المخلصین از این راه دیگه از این وه عباد و بندگان شایسته ای میآیند که به تعبیر آمیان پوز شیطان رو به خاک می مالند شیطان نالزه چون نمعفظه در ترهاش می شه. حالا اینش خیلی جالبه علی جان اللہ همین یک جمله کافیه برای امیرون مامانی در طول عمرش اینکت اسمعو ما اسمع علی تو می آنچه را که من میشنمم تو آواز جبرئیل میشنمی تو ناله شیطان میشنمی تو صداهای قیم وجود میشنمی امونطور که من میشنم انک تسمع ما از من بالاتر و ترا ما ارا و میبینی آنچه من میبینم و میبینی آنچه چه من میبینم. با کی میخواییم مقایسه کنیم این مرد رو؟ با کی میخوایم دیازش کنیم؟ و ترا ما ارا وارد شد دهیه کلبی سر پیامبر رو گرفته است رو زانو پیانبر خابیدند. اشاره کرد به امیر اومد سر پیانبر رو گذارد رو زانه علی خودش رفت. پیانبر چه رو باز کردن بعد از مدتی فهمدن علی جان شما که اینجا نبودی چه تو اینجایی فمودی یا رسول الله من اومدم ده یک کلی اینجا بود سر شما روزانوش بود به من اشاره کرد سر شما روزانوی من گذاشت و ده علی جان اون برادرم جبرئیل بود نه ده یک کلی اون برادرم جبرئیل بود که تمثّل پیدا کرده بود علی می‌بیند آنی را که پیامبر می‌بیند امیرالمومنین داره می‌فهمد پیامبر به من علی گفتند علی تو میشنوی آنچه را من میشنوم و میبینی آنچه را من میبینم اما قلوف نشه اینجا نکنه شیعیی ای قلوف کند الا عنک لست به نبی اما تو نبی و رسول نیستی و رسول الله و خاطر النبی نوبوت ختم شد اما تو چی هستی؟ لاکن نکلا وزیرون تو وزیر منی وزیری یعنی یعنی رب لین و امری و من لسانی یفقه و قولی و جنلی من آیات بگیناتی که موسا در پیشباق خداوند مطرح می کند خدایا چنین کن چنان کن و قرار بده وزیری وزیر وزره برای من قرار بده اشتاد بهی ازری چمرم به او محکم شود حارون اخی این هارون اخیه این برادرم هارون، اون وزیره پیامبر به امیر المومنین فرمود بود جان انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی تو وزیر منی مانند حارون اون نسبت رو داری لیکن نکل وزیرون تو وزیر منی علی تو پناهگاهی تکیگاهی برای من تو بار من رو میکشی کشی وسیعتی وارسی و خنیفتی لیکن نکل وزیرون و این نکل علا خیر تو برخیرین علی استوار بر خدا به پیانبر می گد یاسین و القرآن الحکیم اینکه علا سرات نه فی سرات مستقیم تو بر سرات مستقیم اینکه لعلا خیر علی جان تو برخیر استواری و برقراری دیگه حالا شروع میکنه دمیر الماملین از نگفتنی ها رو میگه برای من و شما که انشان الله باییم ادامه فرمایشات امام رو فردا بررسی به پینگیری کنیم متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله